عقب نشینی شاه پریان هنگامی که لیرازل همراه با برگهای شکوهمند لغزان بر باد می رفت یکی یکی دست از رقص می کشیدند و دمی بر فراز دشتها ها می لغزیدند و سپس در کنار پرچینها فرود می آمدند و استراحت می کردند اما زمین که تمام چیزها را به پایین می کشد هیچ کششی بر لیرازل نداشت چون افسون شاه پریان از مرزهای سرزمین پریان گذشته او را به خانه فراخوانده بود. بنابراین سوار بر باد عظیم شمال غربی می رفت و همچنان که در راه خانه از فراز دشتهایی که می شناسیم با بی تفاوتی به آنها می نگریست. زمین دیگر هیچ نیروی بر او نداشت چون همراه با وزنش که است که زمین ما را با آن نگاه می دارد تمامی علاقه های زمینیش هم از بین رفته بودند. بدون اندوه به دشت های قدیمی مینگریست که او و آلوریک زمانی در میانشان قدم زده بودند. دشت ها از زیر پایش می گذشت، خانه های انسان ها را می دید. آنها هم می گذشتند. و مرز سرزمین پریان را با رنگ های ژرف و متراکم و سنگین دید. زمین برای آخرین بار با آواهای بسیاری فرایش خاند. صدای فریاد یک کودک، صدای قارگار کلاهها و موموی مبهم گاوها، صدای گاری که آهسته به سوی خانه می رفت. و سپس در میان سرحد متراکم شفق بود و ناگهان تمامی آواهای زمینی کاهش یافتند. هنگامی که از آن گذشت، صداها فروخ افتند. باد شمال غربی ما، ام چون اسب ای که مرده بر زمین می‌افتاد بر روی مرز فرو افتاد چون در سرزمین پریان هیچ کدام از بادهایی که بر فراز دشتهایی که می می گردند، می‌گردند نمی‌وزد ولی رازل آهسته در آن سوی مرز فرود آمد و پاهایش دوباره خاک جادویی سرزمینش را لمس کردند به روشنی چکادهای کوه‌های آبی روشن سرزمین پریان و جنگل تیره پایین آنها را که نگاه تخت شاه پریان بود می دید. حتی اکنون هم در بامداد پریان برج‌های عظیم بر فراز این جنگل می درخشیدند. که با شکوهی درخشانتر از جاله نشین ترین ما می درخشد و برخلاف جاله های ما هرگز ناپدید نمی شود. بانوی پریان با پاهای سبوکش از میان سرزمین پریان میگذشت و سبزه ها را لمس میکرد همچون قاصدتی که در دشت هایی که میشناسیم بر سبزه ها فرود می آید و همراه با نسیم ملایمی که به آهستگی آنها را بر زمین می لغزاند ها را نوازش میکند. و تمامی موجودات خیالی و پریانه و منظره شگفت آن سرزمین و گلهای غریبی که بر درختان می و حضور شگرف جادوی پراکنده در هوا همه چنان سرشار از خاطرهای خانهش بودند که بازوهایش را به دور تنه دیواسهای گرهدار نخستین درخت حلقه کرد و پوست پرچین و چروکش را بوسید و این چنین وارد جنگل جادو شد و به هنگام گذرش کاجهای سخت گیری که از آنها نگهبانی می کردند، به همراه پیچک های مراقب که بر شاخه لمیده بودند در برابرش تعظیم کردند. هیچ شگفتی و هیچ نشان تیره ای از جادو در آن جنگل نبود که گذشتهش را زنده نکند. گویی هرگز نرفته بود. احساس می کرد همین دیرو صبح بود که از آنجا رفت و هنوز همان دیرو صبح بود. هنگامی که از میان جنگل میگذشت خراش‌های شمشیر آلوریک هنوز تازه و سفید بر تنه درختان دیده می‌شد. و سپس نوری از میان درختان جنگل تابید، سپس رنگی به دنبال رنگ دیگر درخشید و دانست این درخشش از شکوح و عظمت گلهای هاشیه ی سبززارهای پدرش میتابد دوباره به میان اینان آمده بود و جاهای کم عمق پایش، هنگامی که از کاخ پدرش بیرون آمده بود و از دیدن آلوریک در آنجا شگفت زده شده بود، هنوز از میان علفهای خم شده و تار انکبوتها و شبنمها ناپدید نشده بود. گلهای بزرگ در زیر نور سرزمین پریان می درخشیدند و از فراز آنها و از میان دروازی که از آن گذشته بود و هنوز به چمنزار گشوده بود، کاخی میدرخشید که از آن نمی توان گفت مگر در ترانه ها. و شاه پریان که با جادو صدای گام های بی صدای او را شنیده بود کنار در منتظرش ایستاده بود هنگامی که یک دیگر را در آغوش کشیدند ریشه بزرگ شاه پریان تقریبا تمام چهره لیرازه را پوشاند در آن بامداد سرزمین پریان از دوری او بسیار رنج کشیده بود با وجود خردش شگفت زده شده بود، با وجود تمامی افسونهایش ترسیده بود، با وجود آنکه از راسته جادو بود و ماورای دشتهای میزیست، قلبش همانند قلبهای مشتاق انسانها در اشتیاقش سوخته بود و اکنون دوباره به خانه بازگشته بود و بامداد سرزمین پریان به همراه شادی شاه پیر پریان، بر سراسر سرزمین پریان می درخشید و حتی درخششی بر سر های کوه های سرزمین پریان دیده شد و از میان این درخشش و آن دروازه عظیم گذشتند و یک بار دیگر به درون قصد رفتند به هنگام ورودشان سلحشور نگهبان شاه پریان با شمشیرش سلام داد اما جرأت نکرد به دنبال زیبایی لیرازل سر برگرداند دوباره به سرای تخت شاه پریان آمدند که از رنگین کمان و یخ ساخته شده است و شاه عظی مشتن آن نشست و لیرازل را بر زانویش نشاند و آرامشی بر سرزمین پریان گسترده شد و تا مدت درازی هیچ چیز آن بامداد بی پایان سرزمین پریان را برهم نزد لیرازل پس از آن همه نگرانی زمینی به استراحت پرداخت شاه پریان نشسته بود و رضایت ژرف درون قلبش را میچشید. چشید. شوره نگهبان در حال سلام دادن باقی مانده، شمشیرش همچنان رو به پایین بود. کاخ می درخشید و میتابید. همه چیز همچون برکه ژرفی به دور از حیاهوی یک شهر بود که در آن روز بلند تابستانی هیچ چیز نیزار سبز و ماهی های درخشان و هزاران صدف کوچک درخشان در شفق باز بر آب جرفش را نمی و بدین ترتیب به دور از تند زمان به استراحت پرداختند و حتی ساعت هم در کنار آنها آرام گرفت همانگونه امواج کوچک یک آبشار هنگامی که یخ جویبار را آرام می کند استراحت می کردند چکادهای آبی روشن کوهای سرزمین پریان همچون رؤیاهایی دگرگون ناشونده بر فراز سرشان لمیده بودند سپس همچون صدای شهری که در میان پرندگان جنگل شنیده شود همچون صدای حقق گریه در میان کودکانی که برای تفریح گرد آمدند همچون صدای خنده در میان گروهی گریان همچون باد تندی در باغ میوهای در آغاز فصل شکوفه همچون گرگی که به هنگام خواب گوسفندان از سراشیبی تپه پایین میآید این احساس به درون شاه پریان خزید که از میان دشتهای زمین کسی به سوی آنان می آید؟ آلوریک بود که با شمشیر آزرخشیش می آمد و شاه پریان بوی جادویش را حس کرد؟ شاه پریان برخاست و بازوی چپش را به دور دخترش حلقه کرد و بازوی راستش را بلند کرد تا در برابر تخت درخشانش در مرکز سرزمین پریان جادویی شگرف کند؟ و با تنینی آشکار از جرفای هنجرش تلسمی آهنگین ساخته شده از واژههایی که لیرازل هرگز نشنیده بود افسونی که را خواند که سرزمین پریان را به حرکت فرا میخواند و آن را از زمین دورتر میکرد و گلبرگ‌های های گلهای معجز آسا آن آهنگ را نوشیدند و نیوشیدند و آواهای جرفش سبززارها را غرقه کرد و تمام کاخ لرزید و با رنگهایی درخشانتر از پیش مرتعش شد و جادویی تمام آن پهنه را تا مرز شفق فرا گرفت و لرزشی از میان جنگل جادو شده گذشت. شاه پریان همچنان افسون میخواند اکنون تنین آواهای بدشگون به کوهای سرزمین پریان رسید و کوه ها همچون توده های بخاری که در گرمای تابستان از خلنگزارها برمیخیزد و در هوا میرقصد، لرسید. سراسر سرزمین پریان شنید. سراسر سرزمین پریان از آن تلسم پیروی کرد. و سپس شاه و دخترش دور شدند. همانگونه که دودی از فراز چادرهای بافته شده از پشم سهرانشینان دور می دور همان همانگونه که رؤیاها در سپید دم دور میشوند. و تمام سرزمین پریان همانند ابرها بر فراز غروب و همچون باد با دود، شب با رؤیا، گرما با غروب همراه شاه پریان و دخترش دور شد سرزمین پریان دور شد و حامونی متروک بر جای گذاشت همان گستره خالی همان سرزمین جادو شده را آنتلسم چنان تند بر زبان آورده شد و سرزمین پریان چنان به تندی پیروی کرد که ترانه های کوچک، خاطرهای قدیمی، باغها یا درختهای بهاری به یاد مانده از سالهای دور نتوانستند همگام با سرزمین پریان اقب نشینی کنند و مرز شفق از فراز آنها گذشت و آنها را در میان سخرها بر جای گذاشت و نمی توانم بگویم سرزمین پریان کجا رفت و حتی نمی توانم بگویم انحنای زمین را دنبال کرد یا به ماورای سخره ما به میان شفق کشیده شد هرچه بود جادویی نزدیک دشت ما بود و اینک رفته بود هر کجا رفت بسیار دور بود سپس شاه پریان از خواندن هفصون دست کشید و همه چیز به انجام رسید سرزمین پریان هاشیه دشت را ترک کرده بود که اعثار پیاپی با شگفتیش آنها را به سوی خود خانده بود و با همان سکوتی این دشت ها را ترک کرد که لایه‌های های گسترده رنگین بالای خورشید در هنگام غرب از زرین به صورتی یا از صورتی درخشان به رنگی بیفروغ میگرایند به کجا رفته بود؟ من نمیدانم. و شاه پریان دوباره بر تختش نشست که از مه و یخ ساخته شده بود و در درون خود رنگین کمانی افسون شده داشت و دوباره دخترش لیرازل را بر زانویش نشاند و بار دیگر آرامشی که با جادویش شکسته شده بود سنگین و جرف به سرزمین پریان بازگشت سنگین و جرف بر سبز زارها فرود آمد سنگین و جرف بر گلها نشست هر سبزه کوچکی هنوز در انهنای کوچکش بود، گویی درست در لحظه پایان جهان طبیعت سوگوار گفته بود، ایست. و گلها در زیباییشان ایمن از پاییز یا باد به رؤیا دیدن ادامه دادند. در دور دست آرامش شاه پریان بر فراز خلنگزارهای جنها که دود برخاسته از خانه های غریبشان هنوز در هوا مانده بود، گسترد. و در جنگلی لرزش هزاران گل برگ یا گل را متوقف کرد. برکه هایی را که سوسنهای عظیم آنها قد برافراشته بودند، ساکن کرد تا زمانی که باستاب هاشان در رؤیاءی مجلل به خواب رفتند و در زیر شاخ و برگهای بی حرکت درختان به خواب رفته بر فراز آب ساکنی که رویای هوای ساکن را می دید. جایی که برگهای عظیم سوسن، سبز در آن آرامش شناور بودند لورولوی جن بر روی برگی نشسته بود چون در سرزمین پریان جنی را که به ارل رفته بود چنین این مینامیدند نشسته بود و در آب به نگاه گستاق خودش خیره شده بود و خیره و خیره و خیره می نگریست هیچ چیز تکان نخورد هیچ چیز تغییر نکرد همه چیز در پاسخ به خوشنودی ژرف شاه پریان ساکن بود صالح شوره نگهبان شمشیرش را به غلاف باز گرداند و سپس همچون ذره‌ای که صاحبش قرنها پیش مرده است ساکن بر جای ایستاد و شاه پریان هنوز خاموش نشسته بود و دخترش را بر زانویش نشانده بود چشمهای آبیش همانند چکادهای آبی روشن کوه‌های سرزمین پریان که از میان پنجره‌های باز می‌درخشیدند تکان نمی‌خورد و شاه پریان از جایی نجنبید تنها به لحظه چنگنداخته بود که در آن به خاطر نیک بختی و آسایش سرزمین پریان به خوشنودی رسیده بود و تأثیر این لحظه را بر تمامی قلم روش گسترانده بود چیزی را داشت که سراسر جهان پر دردسر ما با تمامی دگرگونی هایش می جوید و به ندرت می و پس از یافتنش هم باید دردم از دستش بدهد خوشنودی را یافته و نگاه داشته بود و در آن آرامشی که بر سرزمین پریان گسترده بود بر هایی که می شناسیم ده سال گذشت سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی